و الحمد لله رب العالمين صل الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین المعصومين قاهرین المعصومین و نعت دائمه فعلا عداره مجموعی اللهم ما جمعی المشترین و ارحمد و احمد و احمد و احمد هر چود که دید مباحث شعلا با عنوان مباحث قد داخل در اصول شده که سابق نبود یکی از این مباحث این تقسیم قرد بود به طریقی و موطوعی و که البته اساسش بحث بعدی بود و اون قیام امارات و اصول عملیه مقام قفع طریقی و مقام قفع موطوعی طبقه همین قاعده ای که از حاب اصولین ما در اینجا پیش هستن اول بحث رو در قفع طریقی قرار دارده بود آیا امارات و اصول خواهر مقاب قطع تریحه میشن یا نشه از چکه اون چی که الان در لسان آیات در لسان مبایات برمان علم یقین قطع ما شابه داره تزینه هنم این بکار بازه شده بالایه 96 سرش ناظر از فرقه تریحه قطعه موضوع خیلی در لسان حدیق این یک مورد یه مورد یه که یه پراوان کلن هر جا حکم واقع رفته مثل هر میته هر جا حکم واقع رفته به قفل در اونجا است این نقطه اساسی اینه اون رو حرف کردیم که بنابرای مشهور بین علمای ما در این مسئله امارات و مقام قفل تاریخی میشن و از عدیشون حالا با تردید و در اصول هم اصول تنزیلی رو قائل مقام قطعه طریقی می دونن اصول غیر تنزیلی رو نمی دونن. و برای اینکه مطلب روشن بشه همون مثال رو که دیروز در سیدن تکرار می دونن. مثلا اگر یقین داریم این مایه خمره کسی که اون مایه رو تناول می کنه حد میشه. یادی می شه اگر بیانه قادم شد که خمره اون هم بیانه جز امارات اگر استصحاب کرد من خمر بود بعد شبه شد که این سرکه شده خرب شده اونجا هم اگر باز تناول کرد حد بر اون چاری میشه این اصول تنزیلی و اما اگر احتیاط بود مثلا نمیدونه این مایه خمره یا مایه دیگه به حکم احر باید احتیاط بکنن اگر احتیاط بود در موارد احتیاط دیگه اون حکم جاری نمیشه اینکه که ای که از این حد شروع خمر و رو جاری نمیشه یعنی اصول غیر تنمیدی قابل مقامش نمیشه توضیحاتی بود گذشت شرکی بود داده شد و عمدشم به فرق اما امارات چون اینها ها غالبا قائل هستن که امارات جرت کاشفیت داره و از این جهت مثل قرط میمونه از این تقریب رو که دیروز از مرحوم استادمون کرده که کیشان از محمود ناینی و دیروز عرض شد که این مطلب در کتاب آیقویا مونده نراحت که توی بحثمون دوستانم و نظر تغییرات دیگر ناینی و نظر مصادیقی که معرض فاضل معاصریشون و با در بر محمود ناهینی عرض شد که محمود ناهینی شاد مصدر شد این شود شود توی نوشته ها من ایشون اینجور رو تری میفهم و من انسان وقتی قع یک چیزی پیدا میکنه چهار مرحله بر او چهار نقطه برای او تصویر میشه یکی یک سفرتی است که قون به نفس سفر خاصیهه که در حال زن و تردید و شک این سفر وجود ندارد به این لحاظ به لحاظ این سفرت هیچی قائم مقام مبا قرضشین خاص فقط زن چیزی دیگری تی چیز دیگری سر چیزی دوم دو کاشفیت اعتیان به اثر اینها اضافه قصد به خارج به نحو این که انسان خارج رو میبینه طریقه به خارج که کاشفیت از خود این جهت دومه دو جهت سوم قر این است که انسان اون خارج رو هم میدینه مثلا نجاست رو میبینه هم کاشف از نجاست داره هم اون نجاست یا خان رو میبینه جهت چهارم این هست که انسان بر طبق به این که خودش عمل میکنه مثلا اگر نجس باشه اجتناب میکنه اگر پاک باشه اونو برمیذاره با نماز میکنه الی این رو اصطلاحا میگن جری عملی بر طبق قلی. من ما اونایی میفهمن که مرحله اول اختصاص به خدا خارج اون صفتیه هیچی جانشین اون نشه مرحله دوم که کاشفیت باشه با امره شریعت میشن از اینجا با امره شریعت میشه پس با بغینه از اینجا ایشون با بغینه شریط میشه که کاشف واقعه تا بعد اگه کاشف بود واقع هم منکشفه یعنی وقتی بغینه آمد گفت این نجسه ما نجس رو میبینیم مرحله سوم که انکشاف باشه اینجا اصول تنظیری با شریف میشه مرحله سوم واقع مراد از انکشاف در اینجا یعنی ما بدون اینکه کاشفی داشته باشید مراد از انکشاف یعنی منکشف یعنی یا واقع رو می‌بینیم مثلا در سوق مسلمان ها اگر گوشی از قصاب می او را رو مزکا می بینید. باش معامله مزکا می کنید ببینید این مزکا این مراد ناینه از انکشافه کاشقی ازش نیست کاشقش چیه از سوق مسلمان خب اون کاشق قطیقشون گوشتا به مزکا رو باشه ما از شخص تصرف می بینید. از تصرف کشف می کنید ملکیت رو ملکیت یا امین منکشف یا شد. پس این مرحله ثبوت مرحله چهارم جریان جریعانالی در اصول غیر تنزیلی مثل برات و اشتغال مثلا یا تخیل مثلا در اشتغال میگیم اجتناب بکن میگیم چون نجسه. از این دو طرف اجتناب بکن پس ایشان با این تقریبی که فرمودن خیلی راحت روشن میشه که چرا امارات و اصول تنزیلی غایر مقام و میشن اما اصول غیر تنزیلی نمیشه یک سلام اس اصول غیر فقهی فقط توی جریان عملی جریان عملی اسات موضوع نمیکنه جریان عملی میگه تا سمایی هر که شمره اجتناب بکوو دقت کنید نمیگه کل واحدن خمرو چون مفروض نیست که کل واحد خمرو نیست از اجتناب بکن همین که میگه اجتناب بکن ازش در نمیاد آز این خمر آثار خمر باز نمیشه اگر یک مایه رو تناول کرد حد شرب خمر بر او جاری نمیشه این تقریبی بود که خلاصه تقریبی بود که از مردم نایمی هست از کردیم در عبارات خود نایمی این مطلب هست اما این تقریب نیست و در سلمات ادبه از الان هم این تقریب آمده البته راجع به اکتیاتش یک صحبتی هست که الان انجام ده. در اینجا به یک مناسبتی هم مرموم نایمی بحث حکومت ظاهری و حکومت واقعی رو مطرح کرده. اسرع چون برنامه سیل این بحثی اینجا انجام دهیم. من به این مناسبت تکمیل بحث و ایده از نکات رو عرض می‌کنم که ان واضح بشه ماده نکته اول همین فرق بین حکومت واقعی و واقعی حکومت واقعی در جایی است که خود شارع تصرف می‌کنه مثلا بگه از توافول بیت خلاصو به بی این معنا شنشایی که نماز یک نوع حالت خصوصی است شما اگر وارد مسجد حرام شدید تواف مثل نماز میگونه مثلا اگر شما وارد مسجد دیگری کنید دور که نماز صحیت اون مسجد حرام تواف هم اون حالتی که در نماز هست مثلا تهارت باید باشه یقعه بوله انسان الالله قربان کل قربسقی این حالت ها تو تواف هست این استلاح هم اسمش حکومت واقعی اما حکومت ظاهری مرادشون اون است که جعل حجیت شده باشه مراد نایینی مثلا شارع آمده جعل حجیت کرده برای خبرگاه اما برای ممنون اون وقت اگر شخص سره خبرگاه که مثلا کلان چیز واجبه این دایره معنای حجیت این است حکم این که حکم میکنه به اینکه این حکم اداری توسعه داده لا یعنی یکی واجبات یا یا که شلون حکمی که علمش داریم یا حکمی که موعدای اماره است این موعدای اماره هم یکی از احسانو به مخصوصا که اینجوری توضیح خواهیم داد توی بحث آینده اینجوری توضیح نزول معنای مضمون یعنی تصمیم کش شده لكن تظیم کش تعبدن یعنی به عبارت دیگر تعبدن علم کش ام اماره اماره منزله واقع قرار میگیره. خود اماره منزله قرار می یه این نهر تربودی شعال تربودون کرده این توسعه داده شده حکومت به نهر توسعه چون از کنید در خلال بحث ساله اشاره کردیم حکومت گایی تدریبه گایی توسعه است حد کزا هم یا واقعی هم یا ظاهری معیار واقعی که واضحه هم. مثل از توافر الویسالات معیار ظاهری هم ازتظام به حکیه هست هر جا زن باهوجیت شدیم چوسه ایه است حکومت ظاهری. حالا خود بنده سر بافتی و عالی باهوجیت هر در باباکت نیستیم یه جورت چوسه نیست در از این حکومت ظاهری که ما همین لحظه این یک چهل داره هر جا که حجیت بودی را قبول کردیم، اونجا حکومت بنده چوسه ظاهری است و به چوسه است. اما اگه باهوجیت قبول نکردیم حکومت وجود نداره. این و ایشونی ملایق وارد بس شد. من اون لم بحث و که محتل چند ست رو خدمت شما ارتم، 21 و عکلنک 70 تا رویشونو بخونید، چیزی هیچوریش نشین. نکته اینه که اینم قابل بهجیت تعویدی این حکومت ظالمه قبول میکنه. هر جا قابل بهجیت شدین، حکومت ظاهری میاد. هر جا نشد اینا نیازی این خلاصیه بحث اون بحثی که شما چند صفحه در اول سؤالدون مفصل داره، ما به این چک شن کردیم، مختصر و مفید، درستون روشن کردیم میشه شو پس مبنای حکومت ظاهری چه توسعه چه مبنی مقمیست بر حجیه اگر وجود قبول کنیم ظاهری قبول کنیم نیست یه اصلا جای بست نخواهد این هم راجع به این نکتهی ای که در کلمات مرمون هایی نکته دوم در اینجا آهان فرمودن که حصول تنزیلی و امارات و مقام قرد میشن حصول غیر تنزیلی نمیشن این مطلبی که آقایان فرمودن من توضیحش مطلبش انصافا درسته قابل قبوله حرف خوبیه لکه نکته دیگر اینه که بحثی رو که آقایان در اینجا دارن که ما در همون اول هم متعرض شدیم بحثشون راجع به علم و قطع اماره و اصول در است که ناظره به حکم فردی کلی باشه اگر یاد اونواره که آقایان میتشید داشتن از اولی که شیخ انساری اینجا بحث و مفترکن اینجوری بود اعلام اندن مکلب از لطفت اله حکم فرعی کلی اون فرعی کلی این بحث و اصوله و اما اگر حکم فرعی جزئی بود این تاکره این نجسه یعنی به عبارت اخرى اصولی که در شباهات موضوعیه جالی میشه اونو تو اصول نیوم بلن. این چارت اصل استثاب و برایت و اشتعال پخیر چون در شباهات و حک گفتن بخص و اصول مباحث کلی اما اساس و در این مساله، یا مثلا قاعده ملیت مثلا قاعده یز مثلا قاعده تجاوز گفتن اینا به اصول نداره این که چهار تا احسی عبرده چون این چهار احس در حکم فرقی کلی در موضوعات خارجی که اصول بیشتر از این حرف گفتن ما تو اصول متعرض موضوعات خارجی نمیشیم خوب دقت رو حالا اینجا ای را عرض میکنم این من نمیشنم برزاری مخترمونی کردن چی شده در ما هم یا من ده هم پرزه یا اینجا خب طبق قاعده باید همون قاعده رو مراعات میکردن مثلا قاعده تجاوز در اصول محرز تو موضوعی میشه تو شباز حکمی جاله میشه ما تو شباز حکمی قاعده تجاوز, قاعده تجاوز که قاعده تجاوز انسان در نماز شک کرده در حال سجود که آیا رکوع را انجام داده یا نه یعنی بله بله قدره کرده قاعده تجاوز قاعده فراخ قاعده تجاوز قاعده سوق مصدم اینا تمام در شباهات موضوعیه جاده میشه غرفت به شباهات حکمیه نداره لذا این تقسیمی که گفتن خامل این یا باید بگیم که مراد آیا همه از شباهات موضوعیه و حکمیه که ظاهرش این طوره و این منتظم بشن به خصوص از اون در اصل بحثم بنابود در شبهات حکمی کلیه باشه بحث اصولی باشه یعنی ما وقتی بحث قرض و مقرح میکنیم مراد که قرض به حکم کلی تعلق بگیره مراد اینه نه قرض دارم این منکه قرض دارم این تاهر قرض دارم این نجسه قرض دارم این محصوله این مرادشون, مرادشون از چه حکم کلی بود. اما تو اینجا که آمدم میگم حسول از قبیل و قاعده فراغ هسته یا من نمیفهمم یا یک چیزیه شو. باید متضر به این بشیم که مگر نظر می‌بارده که تو این بخش اهم موضوعیه به حکومی خب موضوعی هست خب دقن شما می‌بینم؟ قاعده تجاوز قطعا نه از شباز شو هست به بخش مدردیه مدردی شبه حکومیه یکی از عظم از نماز خوی، عذمه اعتناء تشری و شری، عذمه امام معرز محمود، خب این هم همه هم هست. اینا همه تمام موارد جزئی هستند، طرفی اصول اینا بحثه فقهی هستند و همه در فقه مطرح پس بنابراین یا باید بگیم که مراد آیان تو این بحث علاف خلاف اعم از شواهد موضوعی و حکمی است. و این طور بگیم، با عبارت آیه نمی‌سازه، انسجامی با عبارت ندارد. <تصفيق> یا باید این رو بدین یا بگیم نه برگردی به همون بحث خودمون چرا خارج تو چون بحثی کنیم مثلا قرط یعنی قرط به حکم کنیم قرط دان ممازونه با چه اماره براغا نه بحث اصولی در حکام کنیم اول فرص اول فرص نه بحث اصولی من حکام برای همین جلب بود موضوعی اما اینجا آثار علم که احکام کلی برکنه اینجا 5 کجاست؟ دو تا ستیه. ما توضیح دادیم دو تا یکی در کبرایی در صغرا کبرایی شه هر صغرا این که توضیح دادیم اون هر کی اصولی کجاست؟ متاسخانه همونه که شما کار نداریم و کار داریم شرف ش کار داریم و با هم کار داریم می کنم خب این بحثش آقایون جدا کردن دیگه لذا مروم نایینه از کردن اگر شما استثبت رو به لحاظ شعبه حکمیه بحث مکنیم بحث رو لازم موضوعات خارجيزه و عادل بود حالا و عادله که از این جزء قواعد کلیه و اصوله که بحثی که ما تو اینجا چیه میفهمم اخه این تاثیر میکنه بحثی که ما در اینجا خوب دقت بکن بحثی که در ضمن در حکم فرعی کلی تا اصول بشه و ایزا اصول نمیشه بله قبول دارم مثل رو ما عرض کردیم یا هم باید قطعه به یقینه تنزیز در مرتب تنزیز هم صغرا باید احراز بشه هم خوبرا اما اونی که مهمه و اصولیه چیه بحث من دیمه. مگر این که بگیم آقا اینجا بحث رو عوض کردن اشکال ندارد چیزه به زمین نمیاد. بگیم باید باید باید باید بگیم اینجا بحث رو عوض چرا؟ قاعده چطور شرطی وصول داره مول القول ماف درن میگن که هر که خیلی اتن، پس بگیم بس منم مشکل ندارم میگم من م... چون من اعتباری میدوندم یک امور حقیقی متعلق حالا مثلا شما از ذله نه میگم اونی که متعارف بود این بود. موله. یا باید آیان بگن ما در این بحث یا ما اصول تنظیمی دادیم خارج باید فرق کنه بین چی تو خنجه داتیست. اون که بحث دیگه قبول نداره، شما دیدین؟ اون بحث این نیست، این میسمه. اون میان عنوان خنجه داتیست، اصول خنجه داتیست. پس چرا منقض میشه؟ اون بچه‌ای، حالا در حال ببینم اصول در کجا تو حکمیه یا تو علم از حکمیه؟ بس وقتی بحث می‌کنی، احسان تو خوب بحث بیچاره مراق من مشکل ندارم که بگم بحث و اعم بکنید مگر مشکل ندارم بخویم بحث اَمشو بکنیم نه زمینی زمین رو بازو بحث بحثی که آیان کردن چون در خصوص حکم کلی بود تو میشه این مناسب نیست واسه نکته فنی نکته این مقدار نیست نکته فنی اینه ما چون در شباهات و حکمی کجیه اصل محرد رو قبول نکردیم مشکل اینه یعنی این بحث که اصول محرد قای مقام قسم میشن در شباهات موضوعی معمه داره تو شباهات حکمی معمه داره به نظر ما نقطه خانی روشن شد یعنی اثر اینه، اگر ما گفتیم بس اهم بر لغت موضوع ما داریم. اصولا ما تمام اصولی که با و داریم، همه اگر قبول تنها از موضوعات اما تمام اون اساس ترجیح فلز ناصو معلوم نیست و مه... محرز باشه در صلح شرفان دلیلی بر محرز بودن اساس ترجیح فلز نادری نداری ضعف علی علی علی قصدش اصل محرز نیست فقط سیر عملی جری عملی که الله انزا من ذکر دیا پس بنابراین اگر ما این مطلب مبریم شه ما عرض اون چی که به ذهن ما میاد ممکن است اصل محرز باشه در خطاب حکمی منحه در تشیعه یک اساس و چهارده تصور ما بنا بر اینکه اساس و چهارده در خطاب حکمی جاری بشه یعنی چیزی در گفت مشکن ثاریات حکم کلی نیست نه, نه مرز خارجی اگر کسی بخواد خیلی با قول امروزی ما مسئله خفاش بشه و مله نقصی بشه این ظاهرا اصول قبول کرده اما مشکل در عمل اساس و ثنار یک روایت داره منحصر به یک روایت اون مال اموار سابقاتی که معروف به به واسه در شده که معروف به کسات منحصر به اموار سابقاتی هم با تغییر کل شیء نزیر حتی تعلم عنهُ خرجهم که اذا علم که عنهُ غزرا غزرا در کارو یکی چیه حالا هر قبولش انصافش احتمال انصراف شباط و حکمیه توش قویه نازل فقط به شباط و موضوعی همونیش حالا یک بحث رو برد الان تبدیلی که قبولان بکنیم فقط در تهارت جاری میشه جایی جاری میشه ما ارکردیم مراد ما از اصولی که در اصول بحث میکنیم اصول عملیه که در بحث این اصول میان باید در اکثر از یک باقیه یعنی داشته باشه در اصلی چه فقط توی یک واقعی میشه و محض شغه این محل شقی نیست از اساس صار جاری بشه در شود حکم محلش شقی نیست این محلش اصولی اینم که تمام شد که تاریخی داره از زمان صحابه که آیا قبول بشه یا نشه خب قبول نکنه از زور بار قبول کنه و مواردی داره که اصلا فقهای امام یه قبول بار تا زمان اخباری اخباریا خیلی رسال گنده کرده مسئله استفاه رو یکی از نقاط فاصله بین ها و اصولیها در اقتصاد در شمال حکمی شد. اونا اصرار داشتن اقتصاد جاری نمیشه و یکی شاید کاذریکونن مفاهیم بر اصولی ها که چرا مثلا استفاه جاری یکی از چیزی که به شدت اونها مخالفه تا وحید بهبانی که آمد بعد و اصولی بعدی مثل شیخ و قبول کردن شیخ و کفایو دیگر مرموم نایین و آزیان در شبات و کلیه قبول کرده. مرموم نراوی هم شبهه داره که تعارض باشه استاد این شبهه درافی رو تغییر کردن استاد هم مثل اخوایی ها منکر استثاب و لذا ما هم تعییدن به آزیان ها و تقریبا همون طریق با اضافاتی ما هم قبول داریم خب این استصحاب رکن اساسی در اصول مهرزه در فقه حنفیه این هم تساوز است دو جور است که به نظر با بیاسه بیا خیاس صاهر از امارات غیر معتبره گرفتن واسه اون شیخ دارید صدا ما در محل خودش توزی کردیم که بیاستم یعنی او استصحاب این اصل عملی شده و تنظیریه ها اول اماره گرفتن ما اصل استصحاب استصحاب بدی اماره‌ای حسب برابری اصولی که ممکن است تنظیری باشه سه تا است اساس غیر طبیعی اصولی که اون حرکت تنظیری باشه سه تا شو اساسه صار در شواصطیه استصحاب در شواصطیه و قیاس به نظر مولاخته هر سه مشکل دارن اساسه صار که دینستر مشکل دارد در شواصطیه و الان بر تغییر جریان بحث اصولی نیست اون دو تا هم که به ما جاری نیستن. پس وقتی این بحثی که اینجا مطرح شده بر اساس نقطه شد نقطه نیست که فقط بحث باشه. این بحثی که آیا اصول تنظیلی در مقام قهر میشه یا نمیشه؟ وقت ما در شواهد و حجیه اصل تنظیلی نذارید. بحث خود به خود لازمه. و لذا منحصر میشه به قائل مقام شدن اصول تنظیلی در شواهد موضوعیه. می‌دونم خب هر کس هر بیا بله قبول دارم به از مقمای خویم اغلبشون قبول دارم الیزا و اینا اشکی نمی‌شن حاوی که فاورز ما از راه کارو زارند عدم آدم چجیاکی هست ما اصولا هرمون اینه خلاصه وقت که اصول چون ادعاءات نفسان کاشفیت ندارن دقت بکنیم اصولاً این عقلادی نیست که ما با ابداعات نسخ قوانین رو کشف بکنیم. ما میتوانیم با ابداعات نفس با خارج یک نوع تماس را قرار بکنیم مثلا این کتاب منت آقا بوده حالا بگیم من تماس خوده ده. با اون ابدعات نفس و خودمون میتوانیم روی مثل این غذایی اعتماد بکنیم در حرم باز بود پس حالا بازه در حرم بسته بود به قصد بکنیم با این اصول تنظیری میتوانیم این کار رو بکنیم اما با اصول تنزیلی که ابداعات نفسه خود دقیق بکنیم ما بگیریم شارط چیمی حکم کرده قانون چیمی حکم ما مواتبه این اخصاص شریعت ندار در ایچ قانون ما قانون رو با ابداعات نفس کشن این اصل شعبه ما آه. بله اصول غیر تنزیلی در افکان جاریه. چرا چرای شما پر این اصول تنزیلی در غیر تنزیلی چیه چون اصول تنزیلی در میگه این میگ این حرامه این مستحبه، این خیار هست این دو اصول تنزیلی مورا نمیده اصلی که بیاد خود رو حکر رو اثبات بکنه اما در اصول غیر تنزیلی میگه این واجبه میگه این مشکوکه چون شد در اطلاف علم اجمالیس احتیاط بکنه شک اگر در یک محور بهلره دست به وجه جو در یک محور باز باشه داره بولش. ببین؟ نمیاست بگه این واجبه. میگه شک شما چه شک بنستون مثلا کشیدن سیگار حرامه یا نه این در یک محور بازه طرف نداره باز محورش. یا بگو لام شبهه بدیالا میگه مه شبهه بدیل محور باز. اگر شک در یک محور باز بود شما ببینید نیت یو خوبه کیه شما مالی از انجامش نداری خوب دقت بکنید آ بار اولی که میگه که نه به شهر میگه ارزش چند ارزش چه دارید شما ارزش ندارید ما عرض می که عقوبت نباشه یعنی به عبارت دیگر اصل اینه که میگه شما صح کردید بله دلیل در حورمتش پیدا تعریف نخه میگه همین که در این پیدا نکردین تنجز پیدا نمی‌کنه تنجز پیدا نکرد عقوبت نداره مفاد اساس البراعه اینه <تصفيق> البته آقایان چون به حدیث را تناسب کردن یک یعنی برایت شرعی هست امروز هم برایت داریم یک یعنی برایت شرعی هم قائل شدن گفتن نه همین که ایشون هم. گفت حلیت شارع اجازه داده حلال کرده ما چون انشاءالله خواهد اما برایت شریع قبول نکردیم حدیث رباقی به حدیث رب یا سندن یا دلاتن یا حرزش خصول داره ما برایت حقیقی تنها را قبول کردیم برایت شریع و برایت حقیقی هم توضیح چند بار عرض کردیم عرض نیست خود برایت از میشه هم نیست این ایزاستی به اما نیست جنیدش از عرصه عرصه نیست با عرصه با عرصه با عرصه. نه. اگر می خواهد انتصاب بدین مجاز از واقعی که شاهه اینزا کرده مهندر اوهلا ولی اله اساسا اوهلایی لذا مرموم ناینی یک محلی داره در اول از شاکده در اول بحث اصول مثلا یه بقاعت عقلی فردش بایینه مثلا حدیث رفت مفادش بقاعت شرعیه یعنی رفع حرمت برداشته کده مفادش بقاعت شرعی لازمش بقاعت هر اگه شعر بدی میتونه شروع شده تعجیز زیبایی هم هست علویشنگیت بابا ایشونگه براءت شرعی مفاد عفیش حلیت ظاهری لازمهش عقوبت نیست خوب دقت بکنید وقتی حلال بود دیگه عقوبت نیست اما براءت عقلی مفادش عقوبت نیست لازمه حلیت ظاهری مطلبیشو فهمید یعنی تحلیلش تعجیزه تحرق... تعجیزه تحرق... ایشو برمون نمیذاره قرض بین براعت اقلی شد روشن شد در براعت شرقی چون بین حلیت ظاهری نه واقعی در براعت شرقی قاله به میشه نشه وقتی حلال شد نتیجه تن عقوبت نزوله پس مفاد براعت شرقی حلیت ظاهری لازمش نفی عقوبته براعت اقلی به اکس اینه مفاد براعت اقلی نفی عقوبته لازمش حلیت ظاهری الکه اگه باشی تا حلال نداره. ما اشکالیم در اونجا همین محتواشون خوب هست ولی نیست. اگر مرادیشان از آن زهری این معنی لازمه یک معنی مثل جرمنی گاف بیشتره مثل آن‌دری که در ماشین می‌تونید می‌دونید حرکت می‌کنه، آن‌که ماشین حرکت اگر از این معنا باشه، بعد این ما من ندارم، من سعی از زهری از ازل درمانی هم. خب من امروز با قابل بایل از بی معنا. انقل میگه حکم و تکلیف مازان به تو نرسیده منجز نید. و اگر منجز نبود خوب دخل رو کنید اگر منجز نبود موضوع احکام کیفری نمیشه شما که کی احکام کیفری احکام جزایی بر شما بار میشه که تکلیف منجز بشه اگر بیه این تکلیف منجز نشد شما کیفر نمیشید حتی طرف را هم جوری معنا کردین رو فرمان امتی مولای عالمون یعنی ان شما نمی‌دونستین منجز نیست منجزن عذاب نداری جزا نداره کیفر نداره این که کسی پشت ماشین نشسته اشتباه پرمز شده شد کلی ژلوش مخاطب گیر دنبالش برد بعد میگه آیه کسی پشت سر داشتین با حرفی بیارین گفتم بشه چون اخراف شده بود بر مخالفت قانون این مخالفت های قانون که روی این شش تا جهت باشه خوب دقت کنید سه و نسیان و خطاب و اخراف و مخالفت قانون در این شش مورد اصیان نید احکام جزائی بر اصیان بار میشه همه رو در حال نظام بار میشه اصلا جزا نداره کیفه نداره نه نا. به ملاسه خودکار کردند به ملازم شد. اونا ملازمی واقعی تیجری ظاهر کرد. دقت چی شد مثال؟ هست و نبایدیم. خود این شلای واضح بشه شد. به نظر این هدیه تابوت‌سیر، اون اخ اح... اصولی که در احکام در اون که به خوک کلی جای میشه یه اصول خنده‌داری که اصلا نداریم. این به نظر ما از ما دیگه این بعضی از امور اصول خنده‌دار با مقامات در... وقتی نیست، قلم مقام چی روشه؟ برواقع هم به نظر ما اصل نیست توضیح گذاشته امروز هم اشاره کرده توضیح امروز نهده اما صابقا کن با توزیع نکنه تکرام نشه و احیال اصله نه درست اصلا به این برم هر چی که از تصرف بکنه در حد علم شما این اسمش اصله شما هر وقت تا آمول کردیم با حد دل واقعی مورد عامه نیست هر وقت تعامل کردی با حد دل علم تو مورده معیار کلیش به نظر ما این هست تعامل شما با حد دل علم نه با حد دل واقع شما میگونی یک قصر خون توی که از این دو انا اصال حد دل واقع یک اناه اما شما میگونی یک قصر در دو تا نستادشم غانه علمم تریحیه پس از این اشت... از اجتناب کنم از اون ایجه هم اجتناب کنم و لذا همیشه خوب دفعه بکنی این بسیار ضریفیه هر وقت میخواییم استثاب مثلا اصاف علم که خروع ازویاد در ارگه داره یا موارد مبارد استثاب بحث هر وقت میخواییم شما اونجا رو نگاه بکنید همیشه این نکته رو کاملا در ذهن داشتو اول با بخواست و دیگه آبی میشه همیشه حد دول علم رو تونه حساب بکنیم و اون مطلوب رو تونه حساب بکنی. این که میگرد استثاب مصبصاتش بود جد نیست مثلا زی ده سال پیش زنده بود خبر زنده میگویم شما استثاب بکنی ده سال پیش بگو همون زنده هم زنده هم شده ده سال پیش سال دارد. سی سال مساها سال بچه داره بچه داره هم یا نه میگه این مثلی اون رو نمیشه رو او اون داره علمت بار بکنی هر وقت مخصوی شما با حد علم نخورد میشه مصفت از مصفت اینه این چه خودم خاصی نداره چیز مخصوص اونی که شما حد دال علمتونه چیه زد زنده بود الان چی میخوایم بگیم پس بچه این نمیشوری این چون رابطه بین مطلوب شما با اون حد دال علمتونه پیدا نمیشوری ممکنه زنده باشه و بچه نمیشوری میخواییم اصوار بگویم است این زن از زن اومد، این زن نمیتونه مشوره بگه، بله اینو میخوای سوال چی اثبات حیات میتونی بگو، پس این خانم از اون این اشکال داره، اما مثلا هم باید اثبات بگیم که او بکش داره، ازدواج هم کرده، پس این خانم با شرطی که اگر ازدواج اصلاً کردی من خودم تلاش کردم، ازشم شرطی چون این ده کلمه پیگردش ازدواج، ازدواج چرا کس خودم اینا زن هر داشته خودش رو به این استثار تلاح بده خوب دکنم تیارید چرا؟ چون باید یک رابطه بین مطلوب شما و اون حد علم باشه. در حصول این بوریه. چون ادعایه میان حد علم شما رو حساب میخوند طبق حد دل علم شما انجام میدن این زابطه کلیستی ای در بحث اصول هست به خلاف امارات شما در امارات حد دل یعنی شما تو رو مثلا فرض کنیم مثلا سال پیش زنده بود شهر یه رفتم در مثلا پلان شهر خونه زندگی رفتم مثلا اونجا بود زندگی داشتن خونه این به شما این خونه تا تعامل شما با واقع این اسمش عمار است در عمار و اصل به نظر ما اینه حالا الاهانه شوزیه دیگری در اینجا اضافه پس بنابراین اصولی در این اصولی که اینجا داریم منحسن میشه در تخییر و به اصطلاح اساس الهتیار تخییر هم که از علمای ما اصول ما، اساس الهتیار جاری نمیدان چون میگن لابدیت جای اساس الهتیار نیست که ما ایشان در محل خودش عرض هایی میگن که جاریش شباله. پس امده چون در قابل اصطلاح تخییر درام به محضوره خیلی موارد اصطلاحش که امده احتیاره آیا احتیاط با مقاب علم میشه یا نمیشه؟ خب سه تا احتمال هست این که میشه این که نمیشه این که به این تفصیل قابل بشین بین احتیاط عقلی و شرعی. اگر احتیاط عقلی بود عقلی چی نمیگه؟ عقلی نمیگه این مثلا خمره عقلی نمیگه اشناب بکن عقلی نمیگه خون تو این انا افساد تنزیل عقلی نیست ابداع عقلی نیست عقل از این دو سایناق اشتباه بکن اگر تنزیل عقل همین مقدار اشتباه بکن خب این معناش این نیست که مثلا اگر این خورد حد شرخم را برای جایی میشه. ببینید ما اگر دلیل داشتیم لا تشرب الخم من برای که خیلی واضح بشه که دیگه بدیهی بشه برای تو این دلیل بشیم لا تشرب الخم روشن یه دلیل دیگه آمد گفت که مثلا خمری داشتم شک کردم خلی تو دسته فکر یا نه امام فرمی پرماندن لا تنقضی یقینه بشه کنته الان یقین من خمریته قدقه کنی تو یقینه میبینی که خم الان هم نمیتونی نقضی یقین بشه کنی یعنی چی؟ یعنی الان هم خمر پس لا تنقضی هم اینجا رو میگیره میگه چاره بخم شکه داشتی؟ شاره یا بغلا گفتن خم حالا که خم شد اون لاتشتر خم میگیره این یک دو. دو نقطه فرمه روایت داریم شاره بلخم رو يجلت. حالا که لاتشتر خم رو اینجا رو گرفت شاره بلخم رو یجلت میگیره یعنی وقتی دلیل آمد لاتشتر خم بعد گفت که اگر میدونستی سابق خمره همونزم خمره ولی اون موردش لاست هستار خمر بود لیکن چون داری میگه خمره خود دخلقه خمره پس اون در این دیگه هم که میگه شاره با خم جاشده دارم مثلا اگر شما نزو کردیم که من در امروز اگر رکوع اما انجام دادم امروز مثلا نماز ظهر، تا رخوه اول انجام دادم این باب بسار مثلا رو به کمرشتان که روکوه نمیکنه ده در هم به خقیل دادم رخوه کنه رخوه تو سجود چک میکنه رخوه که از این نکرده سؤال امام می اگر در سجود چک کردی بلا قدرم که سؤال میده. این بلا قدرکت ما رفت فقط نماد رسیم شد نکرم نکته یعنی امرفی سلاسک بلا کرد یا بلا قدرکت جایی هم که رکو موضوع میشه بار میشه زرافت بار مثلا یه ام من امروز نرزه کردم روکو کردم صدقه بدم این بلا قدرکت اینه که دو تا قول پیدا شد یه قولی که بار میشه یه قولی که بار نمیشه نقطه شوچه اون که میگه بار نمیشه میگه گفت امام بلا قدرکت یعنی امرفی س به اون دلیل که میگه ادعا رکع الیوم علیه از صدق ناظر نیست این بچیزی که میگه نه بلا قدرکت یعنی امام حق نیست کردی این مفاده این چیه؟ با قول مرمونه نیست این کشافه. یعنی رکوب محقق شده یعنی در حال سجده اگر شک شکر رکوب هم پس شما اگر در حال سجده شکردی شکر صدقه رو ببین چرا چون امام گفت بلا کرد؟ الا حساب کرده بود که دو آیا از بلا کذره ببین بیم و با نزر این نظر بکنیم. نظرشیم بود. اگر روح او انجام داد، صدره شد. منی اکورد نورده. شارقال دل بذار که. این این چی می‌شه مثل مردمش یک، ازش یک افسدار می‌فهموند، بس در مثل مردم آلیا نویمی میگه استکار. یا برای اصول تنظیری قائم مقام قلط میشه نقطه اینه نقطه تنبی او نقطه حنینه که اگر در جایی اشاره آورد یک اصل تنظیری رو آورد به لحاظ یک اصلی که اونجا بود سوال آیا ما می توانیم هر جا که اون عنوان بود اون اثر رو بیاری میاره این مثال خیلی واضح و عرفی که این شک بکنید این که علماء اختلاف کرده سر اختلاف همینه سر اختلاف نیست که میگه بلاغد کرد یعنی به لحاظ امرفی نه به لحاظ رفای نه نهز این یک رد را. رعی دوم یه نه وقتی گفت بلاغد را کرد اون آثاریان باید میشه شاید داری که بکن یعنی حقیقی یعنی یعنی حقیقی فر رکوب متحقه با. اگر رکوب متحقه شد پس این در در اگر تو دلیل ما بلا نبود امروزی ثلاثه گفت آقا منش در سعیده بودن شک کردن در رکوب فرموز امروزی ثلاثه داری میاد امروزی این سوال میاد اگر گفت امروزی این به درد نظر من خوره به صدقه یا نه؟ از, از اینجا نیست. اما اینکه صلات نیست. خب خالص اجلو ها، ولی اگر امام خود مبانی رو شد. اگر امام گفت امر به اون در پایده انجام چرا این در صلات که شرع عملی گفت معنا هست. پس دقت کردیم دو تعبیر بود یکی بلا کرد یکی امزا تیسا با فکر چند احتمال شد. در هر دو احتمال میگیم اگر نرز کرده بود کرده بده. اینجا کرده صدا نبوده قول دیگه میگه در هر دو وفاید نرز واجب نیست چون ما روحوی واقعیه قول ثمان تفصیله اگر لسان بلا قدره بود آثار روحو بار میشه اگر لسان امروزی تلاتف کن این هم نیستی برای اونهای می بیگن مرمون نه همین که جریع عملی شد امروزی تلاتگر کرد من همین شکه انجام رفی پس آراء کاملا واضح شد در اصول عملیت مثال دیدن که کاملا دیگه برای تون روشن بگنه شخصی نرده کرده که اگر در امروز روکو انجام داد صدره داده حالا چه که در رکوع داره توی تجیده سه تا احتمال چه لسانه دریم امضافی سلاسک باشه چه بلا ادرکت باشه صدره باب بده احتمال دوم دو چه این باشه چه اون باشه نباید بده چون بخون محفظ شکل نارو که داره ویزیون های شکل داره احتمال سوم اگر بلا ادرکت باشه بده قادر تجاوز اگر عنوان امرو پی سلاته باشه نداره چون قیل تنزیه چون امام همه رو به رکوع کن نمازو تموم بکن امرو پی سلاته به رکوع نظر نداره چون به رکوع نظر نداره اون دلیل نه کرد اگر رکوع کرد صدقه بده اون دلیل بگه اینجا کامل نمیشه باشم که خلاصه بست کاملا به نظر من با این تقریبی که از روی هز و لذا شما بخیلی فکر بخیلی بخیلی بگیم راست حق با کسیتونی متقل جاری بیشه یا محلوم آشدی متقل جاری خود شیخم اول گفت متقل جاری میشه خود محلوم شیخ بعد برگشتم اما یکی که بعد از شیخم من تفصیل قائلن بین عطل تنگیری و ریده تنگیری